بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین عرض سلام و احترام خدمت تمامی سروران گرامی امیدوارم که تو این ماه مبارک طاعات و عبادات همه شما مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه ما رو هم توی این روزها توی شب ماه مبارک بویژه در لحظات افطار و سحر از دعای خیرتون فراموش نکنید. امیدوارم که به برکت این ماه هر چه زودتر این بیماری از سر مردمون رفع بشه و هممون به زندگی عادیمون برگردیم. خدمت شما عرضواد که مطالب تفسیری را اگر دنبال کنید ما میرسیم سراغ بحث در واقع خلقت کنونی بهشت و جهنم یا مخلوق بودن بهشت و جهنم که آلایشون آیت الله سبحانی توی بخش 25 و پنجم کتاب در واقع بخش معاد رو به آیا بهشت و دوزخ همکنون آفریده شدند اختصاص دادن من پیش آف قبل از اینکه وارد این مطالب بشم ضرورت داره که نکته ای رو به شما بگم ببینید ما باید دقت کنیم که حالا ما مبایست که از معاد میگیم اینه که آقا بحث معاد به عنوان در واقع یکی از اصول دینمون در واقع شما وقتی میرید نگاه میکنید اینه که اندیشمندان پیرامون کلیات اون با همدیگه اختلاف ندارن آن چیزی که شما میریند اختلاف نظرها رخ داده در باب جزئیات و ویژگی های معاد هست یک از این جزئیات که حالا ما قبلا درباره مواد جسمانی بحث کردیم حالا یک از این جزئیات بحث خلقت بهشت و جهنم هست. که اینجا مطالبی را شما مشاهده می‌کنید این نزاهایی که ما می‌بینیم بین محدثان هست یا بین متکلمان وجود داره این هست. ما بعد اینها رو لحاظ کنیم که بعد در باب اینکه آقا وجود کنونی بهشت و جهنم اینه که آقا بهشت و جهنم الان آفریده شده یا نشده اون موقع بس برامون روشن بشه اینه که ما باید چند تا پرسش رو بهش دقت کنیم اونها رو پاسخ بدیم اینه که آقا بهشت و جهنم خلق شدن چند تا پرسش که میشه لاز کرد بهشت و جهنم خلق شدن ولی انسان ها بعد از مرگ داخل اون نمیشن بلکه تو آخرت و بعد از حسابرسی وارد اون میشن این سوال نکهای این کار ابس نیست ببینید چیزی که الان ما میبینیم بعضی از معتزله مطرح میکنن این هستا خدمت شما هر شود یه نکته دیگه یه سال دیگه باز میشه مطرح کرد اینه که آقا اگه بگیم بهشت و جهنم خلق شده و نیکوکاران بعد از مرگ به بهشت و بدکاران بعد از مرگ وارد جهنم میشن خدمت شما در شود آیا نمیشه این را در تعارض با در واقع برزخ و حساب و کتاب تو قیامت دونست باز میشه سال پرسده آیا بیشت و جهنم در واقع در آخرت خلق میشن ببینید ما اینها رو باید لحاظ کنیم که بدونیم این سوال ها چی هست نکته ای که به صورت کلان ما باید لحاظ کنیم که بحث بس بسه مهمی هست اینه که آقا شما وقتی میره سراغ کتاب های فرق می‌بینید که جدا از یه ده از در واقع افراد که افراد خاصی هستن که ما اشاره می‌کنیم، اکثر اندیشمنان اسلامی به وجود در واقع فعلی در واقع یا خلق شدن بهشت و جهنم چیه؟ معتقد هستن اینجاست که حتی بعض از علماء امامی و اهل سنت اه ادعای اجماع کردند بس ادای اجماع را من لحاظ میکنند ایشون از شیخ, شیخ صدوق مطرح میکنه که اعتقاد ما یعنی اعتقاد شیعه اینه که باب بهشت و جهنم اینه که اون دو آفریده شدن و پیامبر به هنگام میعراج وارد بهشت شد و دوزخ را نیز مشاهده نبود شیخ مفیدم تو کتاب اوائل المقالات بعد از این ذکر اقوال گناگون میگن که به هشت و جهنم هم همکنون آفریده شدن و روایتان را تایید و احل شهر بران اتفاق نظر دارن حالا ببینید یه از خدمت شما عرض شود که حالایشون گفته که اکثریت معتزله و خوارج و گروهی از زیدیه میگن که آفرینش کنونی در واقع به هشت و جهنم امر ممکن هست اما دلیلی بر وجود کنونیان تو دست در دسترس نیست جناب آقای ابو هاشم جببایی وجود فعلی در واقع بهشت و جهنم را محال میدونه که قاضی عبدالجبار هم چیزی که علام هلی در کشف المراد میگه میگه قاضی عبدالجبار هم در واقع همرعی هست با ابو هاشم جببایی تفتازانی هم همین رو در شرح مقاصد بیان کرده است الا من اگه بخوام دقیق بگم شما وقتی میره توی کتاب فرق خوارج و جوهمیه و قدریه و گروهی از زیدیه و جمعی از اندیشمندان معتزلی مثل همون جبایی و عباد سیمری و زرار ابن عمر و قاضی عبدالجبار منکر خلق کنونی بهشت جهنم شدن. خدمت شما عرض شد که اینها طبیعتاً آثاری هم دارن ما به ویژه این وسعت قاضی عبدالجبار برای ما میتونه یک مبنا باشه چون خیلی شخصیت برجسته ای در بین معتزله است باید لحاظ کنیم ادله که اینها دارن ما تو این کتاب ها میتونیم ردیابی کنیم حالا به سید رضی و زوراره ابن هم نسبت دادن که اینها هم در واقع منکر مخلوق بودن بهش و بودن که این در واقع یک خطا هست. ما وقتی میریم سراغ همین تفسیر به جایی مانده از سید رزی که یک جل بیشتر از اون باقی نمونده مشاهده میکنیم که ایشون کاملا موافق با خلق کنونی بهشت و جهنم است. و ما اگر بخوایم به صورت جمع بخوایم بگیم اینه که به صورت کلی متکلمان اسلامی سه دیدگاه دارن اکثریت نظرش این است که بهشت و جهنم همکنون آفریده شدند یک گروه که در واقع این گروه هم ما در واقع میتونیم از به قالبه بگیم اکثریت معتزله رو بگیریم اینه که میگن آفرینش هر دو یعنی بهشت و جهنم تو شرایط کنونی ممکنه. ولی ما دلیل بر تحققش نداریم، تحقق فعلیش. که حالا خوارج و بعضی از زیدی هم این نظر رو دارن. افرادی همه مثل ابو حاشم و قاضی عبدالجببار باید یکی دوتا شخص دیگه حالا که تو این جزوه نیمده اونها نظرش اونه که آفرینش بیشت جهنم در واقع مخلوق بودن یا خلق کنونی بیشت جهنم در واقع امر غیر ممکن است. و ابو حاشم اینگونه میگه که آفرینش کنونی در واقع محال هست و طبیعتا منظور ایشون محال بالغیر هست یعنی محال وقوعی رو میگه و پس محال وقوعی رو لحاظ میکند یعنی محقق نشده است خب حالا میریم خدمت شما عرض شود که اول ما به صورت چیزی که باید دقت کنیم ست تا بحث رو باید لحاظ کنیم که اون موقع اینا بدونیم اینها تو بحث خلقت کنونی بیشت و جهنم مراد نیست یکی اینه که آقا بحث لفظ جنت هر جا آمده اشاره به بهشت دارد یا ندارد اینو باید تکلیفش مشخص کنیم یکی دیگه بحث سکونت آدم و هفوار رو توی اون جنت باید لحاظ کنیم در بهشت بهشت آدم و هفوار رو باید بگیم یکی دیگه ما بحث بهشت و جهنم برزخی داریم این تکلیف این سه مورد رو باید مشخص کنیم که بدونیم آیا میشود برای اونها خلق کنونی لحاظ کرد. ببینید ما وقتی سراغ آیات قرآن کریم می رویم مشاهده می که هر جنتی که تو قرآن به کار رفته در واقع مرادش بهشت وعده داده شده نیست که اونجا در واقع وعده داده شده که نیکوکاران وارد آن می شوند و ثواب آنها اونجا حاصل می شود. مثلا شما تو آیه 39 نو... سوره کهف مشاهده می کنید که تعبیر آمده است و لولا از دخل تا جنته اک قلتا ماشاءالله انگا چرا انگامی که به باغ خود وارد شده کلمه ماشاءالله را بر زبان جاری نکردی که اون بس اون داستانی که در این سوره اومده را همه اطلاع دارید که همون شما وقتی مشاهده میکنیم داستان رو آیه سی و دوم اشاره کرده وَذْلَبْلَهُمْ مثلا رَجُلَيْنِ جَلْنَاه لَأَهَدْهِمَا جنتین من اعنابین و هففنا هما به نخلین و جعلنا بین هما که این ماجرای در واقع دو, دو نفر رو میگه که یکیشون باقی رو داشته و خدمت شما هر شود که یه جور قره بود و ماشالله رو نگفته این ماجرای همون باقی هست دیگه آیه دیگه آیه پانزام سوره سبا است که توی این آیه چنین آمده است: لقد کانل سب انفی مسکنه هم آیه جنتان ان یمین و شمال کلوم رزق رب کن و شکرون لح بلتون طیبتون و ربون غفور که در واقع بحث سرزمین سوار را میگه که برای آن گروه در واقع میگه از جانب چپ و راست دو باغ بود که با اونها گفتیم از رزق پروردگار خودتون بخورید و شکر نعمتش رو به جا بیارید که این شهر پاکیزه و پروردگار آمور برای شماست خب شما اینجا بحث جنت طبیعتاً بحث چی هست؟ بحث مد... باق هستی که تو همین دو موردی که ما دیدیم مورد دیگه که خدمت شما عرض شود بحث بهشت آدم و هواه هست بهشتی که مدتی در اون سپری کردند، در واقع در اون مسک سکنا گزیدند و در پیاله اون گناهی که رخ داد که اونجا لما تفسیرهایی داریم از مفسران و در واقع از آنجا رانده شدن بحث حبوت آنها رخ داد جناب تفتازانی در شرح مقاصد بحث بهشت آدم و هوا را که مدتی به اون در واقع در آن ساکن بودن رویشون ایشون میگه این گواه بر آفرینش بهشت معوت هست یعنی بهشتی که قرار افراد به در آخرت وارد نیکوکاران در آخرت وارد آن شوند ایشون میگه که مقصود از جنت در آیات یاد شده همان بهشت معود بر امم عالم است بعدش هم میگه که برخی میگوین مقصود از جنت در آیات آدم حوا یکی از باقای وسیع دنیا است بعدش ایشون میگه این که ما بگیم آقا اون بهشته باق, باق وسیع دنیا بوده این خطا هست این در واقع یه جور شما به بازی گرفتن و در واقع سخر گرفتن دین هست یه نوع بیعتنایی به اتفاق مسلمانان میباشد آیت الله سپانه میگه این پافشاری جناب تفتازانی بر تفسیر جنت آدم و هوا که اون رو میخواد بهشت معود بگیره امر بی جایی هست صحیح نیست حالا اینکه آقا این گده اومدن میگن که این جنت آدم و هوا در واقع همون باق دنیاوی بوده بس خلوت هست بخاطر آیات خلوت هست که در واقع نکته است که میگن بعد از اون که انسان اگر وارد بهش, بهش شود که اون بهش جاوید باشد پس دیگه خروج در اون مطرح نیست و در واقع نیکوکارانی که وارد اون میشن پیوسته و جاودان در آن خواهند بود خب این بس, بس دامن داری هست حالا ما وقتی میریم میبینیم خدمت شما هر که بعض از موارد رو میگه در مورد جاودان بودن ساکنان بهشت که ما میبینیم تعبیر جنت الخلق آمده است که شما میبینید که ایشون میگه که تو بحث مقایسه اومده دیگه قل حل از که خیرون ام جنت الخللتی و المتقون آیا در واقع جهنم خوبه یا بهشت جاودانی که پرهیزکاران در واقع به اون در واقع وعده داده شدند که ما مبینیم آیات فراوانی داریم که بهشت و وصف در واقع خالد و خالدون در واقع توصیف کرده خیر خدمت شما هر چود این با اون بهشت آدم و هوا در واقع فرق دارد ببینید ما بس خلود اگر خلود اونجا بود جاودانگی بود آدم و هوا دیگه نباید از اون خارج می شدن درسته؟ بس اصلا فریب مطرح دیگه نباید اونجا بشه. چون اونجا دیگه داره به تعبیری دیگه مثل داره تکلیف نباید باشد هرچند در مورد جنت آدم و هوا هم میگن که اونجا بحث داره تکلیف نبوده یا شما می‌بینید که تو بعض از آیات اومده که اطاعن غیر مجزوزه پاداش جاودان و مستمر یعنی اگر کسی وارد اون بشود دیگه این جاودان و مستمر هست حالا ایشون میگه در هر حال هدف این است که جنت مربوط به آدم و هوا قابلیت هر دو تفسیر را دارد اما از دلال قطعی مخلوق بوده بودن بهشت و دوزخی که انسان ها بر اثر در واقع عملو. عمل نیک و عمل صالح و بد به اون وارد می شود به شمار نمی رود یعنی می بینید ما می تونیم این گونه بگیم اگر من بخوام خیلی ساده تر بگم آقا ما از وصفه که اینجا آمده است در مورد آدم و هوا که از این وصفه ما می توانیم اینجوری نتیجه گیری کنیم که اوصافی که اینجا ذکر شده که در حقیقت گونه که بهشت بهشت آدم توی این دنیاست، اشکالی نداره که بهشت جاویدان هم تو این دنیا باشه یعنی یه استدلالی که الان به تقریب به ذهن میشه گفت این هست دیگه با این حال باید توجه کنیم که بهشت آدم غیر از بهشت جاویدان هست و گفتم که اگر ما بخویم استدلال کنیم که از بهشت جنت آدم و هوا بخوایم بگیم که آقا بهشت و جهنم الان آفریده شدند اینگو میشه گفت دیگه میگیم که همانطور که بهشت آدم هوا خدمت شما هر شد تو این دنیا بوده اشکالی نداره که بهشت جاویدان همچه در همین دنیا باشد یعنی ممکن باشد وجود داشته باشد در هر صورت بهتره که این, این رو در واقع ما بگیم که به تعبیر کردی الله میگه میگه یا از دلیل قطعی مخلوق بودن بهشت و جهنمی که در واقع انسان ها با عمل صالح به دست وارد اون میشن یا در واقع با عمل سو در واقع وارد جهنم میشن بگیم اون نمیباشد یه نمونه دیگه هم که ما داریم که در حقیقت بحث دیگه هست بحث بهشت و دوزخ برزخیست که تکلیف اونم ما با مشخص کنیم ببینید ما باید دقت کنیم یه از متکلمان و مفسران بهشت و جهنم برزخی را با بهشت و جهنم آخرتی خلط کردن در حالی که اینها با همچیه تفاوت دارن برزخه را ما قبول داریم و در واقع آخرت دیگه بعد از اون میشود، درسته؟ اینه که در واقع نیکوکاران در واقع بهشت برزخی دارن و بدکاران جهنم برزخی دارن البته اینجا بسه تکامل مطرح میشه که ما در روایات همون به تفصیل واردیم بس شده که یه تکامل برزخی انسان ها دارن یعنی اینه که ما صلوات بر پیامبر میفرستیم این در واقع ازدیاد درود رحمتی که هست این در واقع همون تکامل برزخی نبی اکرم را میرساند حالا شما می‌بینید که تو آیاتی ما داریم مثلا داستان مؤمن آل فرعون که توی آیه 26 سوره یاسین آمده است که قیلت خول الجنه قال یالیت قومی یعلمون که این آیه در واقع و در ادامه فرماند به ما غفر علی ربی و جعل من المکرمین اینجا قیلت خلل جننه در حقیقت ای بخویم وچش رو بگیم که حالا اینجا ایشون گفته جنت تو اینجا جنت برزخی ای نه جنت موعود حالا من میخوام توضیح بدم اینی که خدمت شما عرض شد که به جای خبر از کشته شدن مومن آل فرعون از چه تعبیر استفاده شده از است؟ تعبیر قیلت خلل جننه که در حقیقت میخواد اشاره کنه که بین کشته شدن اون شخص بدست مردم اون قریه و بین امر به داخل شدن تو بهشت فاصله چندانی نبوده و در واقع این دو به قدری به هم نزدیک بودن که انگار کشته شدنش همان و داخل شدنش بهشت هم همون‌ها ببینید این این فاصله نیست یا شما بسه خدمت شما هر که درباره فرعون فرائنه رو که ایشون بیان میکنه میگه تو آیه 46 سوره قافر که شما اینجا مشاهده میکنید که میفرمایید که النار یورزون علیها قودوان و اشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب که بر اساس این آیه ارذ فرعونیان بر آتش پیش از روز قیامت هستیه. ببینید ارزه پیش از قیامت قیل ادخلو فرعون که این در واقع پیش از روز قیامت هست یه میخواد مشخص کنه که عرضه کردن این آل فرعون بر آتش در عالم پیش از آ... در واقع خدمت شما عرض شود که پیش از قیامت صورت میگیره شما این رو حتما به اشتقت کنید و اون عالم چی هست؟ که ما میگیم در واقع برزخی که فاصله میان دنیا و آخرت هست خب پس ما می توانیم بگوییم آیاتی که تو همه اونها همه ای آیاتی که در باب جنت آمده همه اون جهن جنت وعده شده نیستن این یک دوم جنت آدم و هوا در واقع اون را ما نباید جنت وعده داده شده بگیریم جنت و نار برزخی هم همین شکل هستن اونها را ما نمی توانیم در واقع جنت و خدمت شما ارزود اخروی بگیریم خب وقتی شما این تکلیف رو مشخص کردیم اینا رو شما نمیتونید عنوان آیات برای شما نمیتونه استدلال باشه بعد وارد آیاتی باشیم که سراحتن داره از بحث وجود کنونی بهشت و جهنم صحبت میکنه که ما زمینه برای اون مشخص شد. خب این وسط از آیاتی که ما را کمک میکند بحث معراج پیامبر اکرم هست که آیات سیزده هم تا پانزد آیات شاخص در این زمین است که میفرماید که و لقد رآه نزلتا اخرى انده صدرت المنتها انها ها جنت المعوه که ایشون میگه که در حقیقت منظور از جنت المعوا که اینجا آمده است همون بهشن موعود هست که اینجا در واقع طبق نک... نکاتی که داریم که حالا تو بعض از آیات دیگه به جنات عد نو تعبیر اون شده که در واقع به روشنی بیان میکنه که پیامبر فرشتی وحی را در کنار صدر... صدرت المنتها که اونم در جانب اون بهشت جاودان قرار داشت در واقع دیده و اگر بهشت آفرید نشده بود این چنین نشان دادن و در واقع مشاهده خارج از به تعبیرشون فصاحت و بلاغت می بود. یعنی ببینید در هر صورت این آیه خلقت بهشت رو و همچنین جایگاه و مکان بهشت رو در واقع خبر داده بعد نکته که وجود دارد شما یه چیزی است در قالب جمله اسمیه اومده حالا من این بگم میخوام این در واقع میرسونه که خدمت شما عرض شبهد که تحقق پیدا میکنه محقق هست و این نقطه رو ما بعد دقت کنیم حالا اینکه مکان بهشت الان صدره اون در واقع جنب صدرت المنتهی هست این یه بحثی است که خدمت شما عرض شود که با قطعیت نمیشه گفت یعنی ما الان فقط آیه به این اشاره کرده ما مکان بهشت برمون تعیین شود خیلی ما نمیتونیم اینو استفاده کنیم اما میتونیم از این آیه استفاده کنیم که بهشت الان چیه موجود است. چرا؟ چون که پیامبر فرشته وحی رو در کنار صدرت المنتقه چی بوده؟ دیده است. خب وقتی دیده یعنی بهشت بوده دیگه. یعنی بهشت آفریده شده است. این یک شاهد.